garan bir saçı bırma hardan safaram harayar elinden o bayramda hiç yer il gül olmaz bu bayram biz birdik biz bayramız obam halayşi razıya ki sədayı mar məşnəvəyin salnoutun mubarak منده از زنگ زن تبریک گنی زندیمش که از سلیمان است. من استودیو وسائط شتا. نبدا بامیدیه زیان و ثم شادگان رامیشیر خرمشاه احواز اندیجان و فی جميع هذه البلاد نقوم بزيارات ميدانیه <تصفح> جشن آغاز سال نوع دیلمی که تابستان برگذاربه اما الان همین جان دیل نوروز ملی و داشتنی با هفت سین و ماهی سفید و مخلفات ننمچنه تا صحبت از نوروز به من یال چکم نه فقط ماهی سفید، باقال تو خوشکابیج اصلا پلکه و اشپل و زیتون پرورده و باقالا و مغزه گرده اینجا خوزه سنگ خواب و آبا خرابه بچه ها آبادان که عبدالره معماری همه سر بازار ها دارن این دید میزن بچه ها خورم شرم خله به شردی به ساتی جیگره اوف جیگره تازه بزرد این نوروز ما، این 13 بدر ما، این چهارشنبه سوری ما، اصلا این خراسان ما رو بدن ما می‌خواد بریم، ما بهش اصلا لهجه عربی ما خانم بهش لهجه مشهدی و خراساری نمی‌خونن، حال ما رو خوب کن یار دمشق، اینا رو به مشهدی میگن، اینا رو تو خراساری هر جای خراسان باشه ببانه سالی تازو پیروز ای با ایخم ارسه ایوی برای ازدکم دیوام سرکوتو یو سربرزیه با همو کردک به سرانسری دنیاده اینجا رادیو فرداست؟ هلو هم مادی. برکاستان رو تنظیم کنیم با این نوروزی رادیو فرداست <تصفح> نوروز با فردا